گل‌های جاودان برنامه شماره 136 در برنامه امشب استاد معزز دکتر لطفعی صورت‌جه سخنانی درباره حکیم نظامی گنجوی ایراد می‌نماید Jovey Dunn. Hor dat de gold haba vin, Az goeststan e man bebar baravit. Goll hainhan rzo xeex boșd, vin gostan hain e' bod. در اواخر قرن پنجم هجری خانواده ای ایرانی از کوهستان‌های خوش آب و هوای کردستان و عراق عجم برای تجارت راه شهرهای فارسی زبان آذربایجان و ارزنجان را پیش گرفتند و در شهر گنجیه که در آن روزگار در قلمرو اتابکان آذربایجان بود رحل اقامت افکندند یونسوف رئیس این خانواده کوچک از مسلمانان متدین و پاکنهاد ایران بود که در اطاعت و طبعیت از قغامین و سنن رسول اکرم بسیار مقید بود و در رفتار و کردار خیش از اون که برای مرد مسلمان ضروری است رو گذاری اما چون فرزند ایران بود و در فلات وسیع و کوهستانهای زیبایی این سرزمین زندگانی کرده بود روحی گشاده و دلی آشق پیشه و رامش طلب داشته و رگ جانش با سیمهای تار و ارقنون و او و نای چوبانان دیار ما که از فراز تلهای خورم گوزپندان خود را به چرا راه بری آشنایی داشت و از همین روی زنی از توایف کرد گرفته بود زن زنان کرد در تنازی و زیبایی مشهورند. اینان در آغوش کوهای الوند و در میان مراتع خورم و باسفا و کمنهای محملیان چشم به دیدار آفرینش کشوده و از کودکی روی همین دیبای ملون طبیعت و بساعت زیبای آن بساعتی سبز چون جان خردمند، خواهی معتدر چون مهر فرزند شقایق سنگ را بودخانی کرده، سبا جعد سمن را شانه کرده، با نقمی مسرد بخش رودخانه ها که روی سخرها می غلطند، آشنایی داشته و تن را در آب زنانان شستند، و طبعا روی گرم و افروخته و سری پر از عشق و سودا دارند. همین که از را آفتاب سر در آغوش کرسار میند نهد، روی چمنهای کنار ده کده، و آهنگ نی میرخسند و به ترانه های کردی که از شادی و توسوم لبریزه است، گوش میدهند و احیانا آهنگ عاشقانه را با صدایی که از صافی و دلکشی تا اعماق روح انسانی کارگرمی شود به مدد نصیم مرایمی کوستانی، به یاران و دلوندان و آشنایان هم دردخیش میرساند. زن و شوی در گنجه به یاد سرزمین دلکش ایران، خوش بودند و روزگار جوانی را با همون مهربانی و محبتی که ویژه مردم سرزمید ماست میگذارند خداوند که میخواست همه سعادتی را به این جفته روشنده و پریدگار نایت فرماید و آنها پسری بخشید اسمش را الیاس گذاشتند و به تلبیتش پرداختند پدر او را به استادان دانشوند شهر گنجس پود و خود قبائد ادب به انسانیت و رسوم آزادگی و پاکی آمنی و حیاء را کس پدران خشبه ارسپورت بود به او می آموخت. مادرش نیز نرم نرم گوشوی وی را با ترانه های دلکش کردی و حکایات شیرین و فریبنده ایرانی می نوامد و خشکی و تحجر فلسفه و کلان و علوم دیمی را با نرمی و اطرافت ادبیات گبران می کرد تا کنان شد که جوان دانشمند ما با تخلص نظامی شهرت یافته بود در دانش و هنر با استادان نامدار روزگار خیش تعلق می‌زند مطبعش مصافح جلال و لطافت جلاع آب روان را به خاطر می‌آورد. باهمش این همه که آن خانه‌نشینی پیشی کرده روز جوانی را به عبادت و ریاضت می‌گذراند و مانند نیوتن انگلیسی ایام شباب را به کشف اسرار آفرینش می می‌پردازد و از کنج کتابخانه خیش پای فراتر نمی‌آید. و می گفت روی از جان در گوشه کرده کفی پست جوین رهد کرده چون ماری بر سر گنج نشسته ز شب تا شب به گردی روزه بستید تو زنبوری که دارد خانه تنگ در اون خانه بود حلبا و یه صدرنگ در این اندبا منظومه مفصل مخزن و را تمام کرد و چنان که رسمون روزگار بود اون را به بهرامشاه فرماندار هرسنجان بخشید فرماندار دانا و دانشپرور و هنردوش قدر این منظومه گرما را که سر پر سر حاوی نصایح و اندرزهای حکیمانه است، این دانش بوشتاو و سخن سرای ما رو بنا نمیخیش بنمیخواد اما پادشاه در بند از وی هوشمانتر بود و برای اینکه در روح شاهزاده جوان آتشی برانوزد و او را به التهاب و سوختن اندازد کنیزکی ماهروی از ساکنان دشت قچاو نازو کم دام خزری در همون بایی ورود دل شاعر جوان را فریفته خیش ساخت و او را حسیر گیسوی تابدار خودگردانید. زاهد گوشنشین دوشیزه را با این مسلمانان و عقب نکام خیش درامرد و سالی کند کام دل از دلت دیواروی برمی اما جانب هیا و عدب را از کف نمی داد و عشق و فای بستی خیش را از سرکشین نگام می داشد. زیران مردم دیارما در زنا شعوعی موقع دفت نیستند و اگر همسر خیش را از جان بیشتر دوست دارند این علاقه را آشکار نمی کنند نبادا قرمت خانواده بشکند و قواهد عدد و ایفران که نزد احل بیت از مراعا تشکلی جنیست به خواب فرد. اما روزگار که با آزادگان همواری کینه دیرین دارد بر سعادت این گوشنشین آزاده حسد بود و زندگانی او را و غباری بردمید از راه بیداد شبیه خون که بر نسلین و شمشان برا اومد عبری از بریاج اندوه فروبای سیلی کوکاکو دلارام و دبچاقی را بیماری مرد در رسید و در آقوش همسرخیش دیده فروب است و دیگر نخواست به دست مردم کشم از رو خواهی گری چیده و مرادی تلبیده باشد <تصفيق> Mmm شاور جوان می که کسیین روزها و سو معوبه جا پیشش دامن را دو باز منابط تر می کرد و وقت آن آسمان، ناله ها و شکارت ها داشته و آخوات تفلی خاطر را دراندی که بیاد اون دوبت تناز داستانی فتح داشته و شمعی از تعلقات خاطر و ناکامی های فیش را در امریکاییت دبونی جد منظور داستان شیر محسلو را در زد یکی دو سال پرداخت این داستان که بزرگترین و دلنگیزترین و پرشورترین حکایات آشقانی ایرانیست دلهای مانند سنگ را مدسته ساخته و کشمان خشکیدهی را گریانیده است. این را سخنان سوزناک نظامی از دل نومی بری برمیشیدد و مانند آتشی جانها را گرمی به اینکه میده. میدهد. از همون دو خستین بی شماگل شیری از قلم سیرافرین نظامی جایی گیرد. مانند آن است که گرندام مثل چاقی فیش روی اون و موبنون زیبایی فیش را مورد تنکیر شاهر به شکست برادار است. نویدی ها، مداره ها، نازه ها، میوفایی ها و دوری ها مانند پرده های بناگو، آرز اون مغرورد ها میپشوند. در در پایان، پرده سیاه مرگ، تن نازمی نوید گرفته و از نظر نافعی داشت خود نظامی نیست این مرگ قافل نیست. و که در اندام مرگ شیرین میسراییت مانند آنست با خون برزفه ترسیم ی خود می در این ابسانه شرط از تهشت گروندن، قلاب تخ و شیرین تشوندن، مکنه اون که اون کم زندگاه نید گل برباد شد روز که آنید، سبت رو چون بکه به چاق من بود، جمون بردید که خود آفاق من بود، و مولون تکری نقض و خردمند در استاده به من دارای در برد پرندش در و از در آهنیدر، قباش از بیرهن تنگاوستیدر. دران را گوش بر مالش نهاده، مرادن همسری بالش نهاده. تو ترکان گشته سون کوش مطاد، تو ترکی داده رختم را اتاراد. شاعر نامدار ایران را برگردن هر باوز و عدب منت هاست. زیرا تمام دونندگان، از از وی از خان نعمد دوب و سرشاره او نواله ها خودده بود و از سرچشمه فریاز تپشم، جورنوشی ها کردند و چیز جورن گو استون شو اسمشو آخره خود اوموشن و, و همینجا آبوشش مش خوشکی این چیز راجین را به خاطر نیامرد که احسان تمام می ریزلیم ده هر چند بالغ church me sh شنو Desde este sneye tu Están go ber mór gacheve golou Joel. Chau past Marche Han Zat Uymys We are far home, or I don't think La bombocho do sogra é del car آه ای جان در عالم رفیق است تو را تا وقت سختی هم‌طریق است طریق هر چه در عالم رفیق است را تا وقت سختی همتریقه است. چه بد که با من کی نجونی؟ بد و فرد گربدی کردم نگویی. شبیه خواهم که بینی داری انرا. سرخیزی و شب بیداری انرا. درست پولا داری دل نسنگ. وقشای بریم. مجروع دلتن من را در عاشقی کاریست موشکل که دل بر سنگ بستم سنگ و دل شو در بیداری و خوابین چنینم پناهی تو خود را ندینم Thank <laughs> you. Stand, stand, stand, stand, stand, del verso <imitates singing> I'm I'm I'm I'm را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 Reline Ra sacharni o tod ohi lao lao o o lao جاویدان از گلدار بی همتای عدد ایدان، اونی که هرگز نمیدن، شب خوش. آن چه شنیدید، برنامه شماره 136 گلهای جاویدان بود که با شرکت آقایان محجوبی، بنان، عوامی و بدیعی تنظیم دارده. گفتار از افتاد صورتگرد.